بسم الله الرحمن الرحیم بنام خلابند بی انداز نصبان نحاویت باره یسبح الله ما في السماوات و ما في الأرض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیب آنکه در آسمان ها زمین است برای خدا تثبیح می گویم مورد چست با حکومت از آن اوز بحث تاویش از آن اوز چیج، خلقكم فمنكم كافر و بر همه چیز تبانا او ذاتی که شما را آفرید گروهی از شما کافر و گروه مؤمن استاند به خداوند به آن کی میدهی بینام خلق السماوات والارض بالحث وصورتكم فاحسن صوركم والاله المصيف اصمنها وزمین را به حق آفرید و شما را تصویر کرد تصویر زیباو بتل فتیب و سرانجام با کشته همان به سوی او كل ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم اذا تشهدون ان كرا في اسمانها وزمین است ميدانت بس آنچه پنهان یا آشکار میکنید با خبر است و خداوند از آنچه در سینه آگاه اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَلْلُ فَذَاقٌ وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم. آیا خبر کسانی که از شما بودند به شما نرسید است که چگونه تعم گناهان بزرگ خود را چشیدند به عذاب دعثناک برای آن خواهد ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْكِهِمْ رُسُلُونَ بینات فقرو، ابشون یه دون نا فکفوه و تولو، و استغنوا الله، والله غني حميد. اند خاطر آن رسولان آنها با دلایل راکشان، با سراغشان آمدند. ولی آنها گفتند: آیا بشرها ی میخوان ما را هدایت کرند؟ و به این ترکیب کافر شدند و روی برگرداندند و خداوند بینیاز بود و خدا آگنی و شایده ستا یه شهر زعمال لذین لن قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلك على الله کافران پنداشتن که هرگز برانگیخته نخواهند شد بگو آری به پروردگارم سوگند که همه شما مبعوث خواهید شد پس آنچه را عمل میکردید به شما خبر میدهند و این برای خدا آسان است بالله و رسوله و النور انزلنا والله بما تعملون قبیل حال که چونین بخدا برسول او با نور که نازل کرده این ایمان بیاوریم و بدانید خدا با آنچی انجام میدهید آگاه یوم ایمعوكم لیوم الجمع ذلک یوم التغابم وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَيُرِذْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ خَاهَتْ همه شما را در آن روز اجتماع گردآوری می کند آن روز روز تقابل است روزی که معلوم می شود چه کسانی مقبون شده اند و هر کس ایمان به خدا آورد و عمل صالح انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری وارد می کند جاودانه در آن میمانند و این پیروزی بزرگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَارِكَ اصحاب النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِتْنَ الْمَصِيرِ اما کسانی که کافر شدند و آجات ما را تکذیب کردند آنها اصحاب دوتخند و جاودانه در آن میمانند و سرانجام آنها سرانجام بدی ما اصاب من مصیبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله یهدي قلبه والله بلشءعلم هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر اذن خدا و هر کس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت می و کند با خدا به همه چیز دانا و اطیع الله و اطیع الرسول فإن تولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبین و اتعاد کنید خدا را و اطاعت کنید خیام را و اگر روی کرتان رسول ما جز ابلاغ آشکار وزیفه ندارد الله لا إله إلا هو والله فليتوكل المؤمنون خدایوند ذاتی که هیچ معبودی جز او نیست و مؤمنان باوجت فقط بر او توکل کنند یا ای الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم معذون لكم فاحذروهم و این تعفو و تصفحو و تغفیرون فإن الله غفور وحیم ای کسانی آورده اید بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند از آنها برحضر باشید و با اگر عفو کنید و صرف نظر نمایید و ببخشید خدا شما را می چرا که بیگمان گمان خداوند بخشند و است؟ انما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم بگمان اموال و فرزندانتان وسیله آزماویش شما هستند و اجر و عظیم نسل خدا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بنابراین تا آنجا که در توان دارید تقواگ اداکی دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است و آنها ها که از با وحالت خیشتن مسعون بمانند رستگار و پیروزند انت قرنما فضن حسنا یضاعفه لكم و لكم والله شکور حلیم اگر به خدا قرض حسنه دهید، آن را برای شما مضاعف میسازد و شما را می‌بخشد و خداوند شکور و حليما عالم الغیب والشهادت العزیز الحکیم او از و آشکار با خبرت و او عزیز و حکیما